حکایت دست و پا ای هزار پایی بکشت. صاحب دلی بر او گذر کرد و گفت سبحان الله با هزار پایی که داشت چون اجلش فرا رسید از بی دست و پایی گریختن نتوانست. چا آید پی دشمن جان ببندد عجل پای از به دبان. دراندم که دشمن پیاپی رسید کمان کیانی نشاید کشی